صلی علی محمد و آل محمد معجزا فرجهم بسم الله الرحمن الرحیم مباحثه طب المعصومین بحث خضاب و رنگ موی سر و مطالبی مربوط به پوست و مو از کتاب‌های پزشکی جدید اصول طب داخلی هاریستان قسمت پوست و مو و یا مال اکادمی علوم انگلستان بریتانیا دارت المعارف پزشکی خانواده اون جلدش که مربوط به پوست و موه و کتابهای دیگر و متخصصین از علم جدید رو مطالعه کنیم مثلا آقای دکتر راد پدر پوست استان خراسان از دانشگاه پزشکی مشهر و دکترای دیگه مثلا برای بانوان مثل دکتر سیمین تلائی مثل دکتر لیدا زیایی برای مردان هم با دکتراهای مختلف هست مثل دکتر زرین فرق، استاد دانشکده پزشکی مشهد متخصص پوستمو و فوق تخصص قارچ حتی در زمینه انواع قارچ شناسی پوستی کتاب قطوری هست از یک دکتر متخصص زن به نام منیژه حالا مباعث ما در بحث ریزش مو هست در طب گیاهی آقا چیکار کنیم که جلوگیری از ریزش مو بشه میگیم تروایات شیعه مطالبی گفته بسیار ارزنده یک شبها شانه نکنید آخرین پیشرفت های علمی می گوید در شب نه تنها محسوسات پنجگانه به خواب می روند بلکه تک تک سلول های بدن روبه خواب می روند مایچه ما های حلقوی دورت تارموی خوشی ول علم می کنیم شونه می و تولید الکتریسیته ساکن بیشتر نطفه مو صورت میگیره مو از ریشش در بیان دوم اینکه تو روایات ایستاده شانه نکنید چه شب چه روز استاده شونه نکن سوم در حمام شانه نکنید برس نزنید چهارم عکس جهت مو شانه نکنیم پنجم که پزشکی جدید هم میگوید شانه و برس شما نکتیز نباشد علاوه بر تخریب پوست سر یکی از عوامل ایجاد مو خوره مو خوره موه یعنی هر تار این موی دو سه تا چار تا تار میشه بعد این موخوره که به پیاز مو برسن پیاز مو رو از بین میبره جاش مو در نمیاد. برای این که این موخوره پیاز مو رو از بین نبره مثلا فرض کن این یک تار مو حالا شده چند تار از بالاترش قیچی میکنم و بعد نکای این موها رو روغن زیتون میزنم دیگه از پیشرفت موخره جلوگیری میشه خام نقش روغن زیتونه بگم از زیت قتل الانبیا چه در خوردن چه در به کارگیری به صورت زماد که مبارسه ما تو پوست موه با ناخون نکتیز سرت رو نخارون یا با هر شیع نکتیز که دم دستت هست سرت نخارون بدنت نخارون تو چهار نوع باکتریای مضر پوستی و قارچهای گوناگون می‌شوین اگر کسی بخواد ریزش سریع موش رو پیشگیری کنه جوشانده گل بابونه جوشانده گل بابونه که در آن حنا را بخیساند 20 دقیقه قبل از حمام بر سر بزنند بعد از 20 دقیقه بر سرشو با آب بشورد جلوگیری میکنه از ریزش موی سر بگونه این موی سر محکم میشه که با دست بکشیم کنده نمیشه بعد باید شخص ببینه که آیا این ریزش موش به خاطر فقر املاح بدنه، سوء تقضیش رو درمان کنه و املاح بدنش رو تأمین کنه یک بار دیگه نه این ریزش موش جنبه استرسی دارد. باید مدیریت برخیشتن و حس اعتماد به نفسش رو تقویت کنه این دوتا رو باید تقویت ریزش موش چی میشه عمو جان قطع میشه دارو نمیخواد یک بار دیگه هست جنبه هورمونی دارد یعنی اگر مرد هست هورمون های مردانش بیش از اندازه شده ریزش موش زیاد میشه با اینکه از نظر سیر طبیعی در چرخه حیات انسانی یک مرد و پسر از زمان ممیز و بالغ شدن به بعد کم کم دو طرف سر خلوت می‌شود اما نه اینکه تماس سر حادث شود اما اگر هورمون مردانه تستوسترون زیاد باشد یا اینکه که کمرلق باشه تونتون برکتش بیان یا اینکه ازدواج کرده مثلا زیاد عملیات اکروباسی انجام بود انجام میشه. و یا اگر مثلا فرض کنید این یک لاتی باشه این لاته زیاد فلوت رو میزنه استمناه در پسران یا مردان که حرامه و گناه کبیره است 23 بیماری میاره یکیش هم همینه خواستم بگم علله ریزش مو زیاده گاهیم اینه نه یک بیماری های زمینه ای داره مثلا کمکاری کلیه داره چربی خون بالا داره قند خون بالا و نوسانی داره فشار خون نوسانی و متغیر داره حالا این بیماری های متابولیکی مخصوصاً قند خون بالا و نوسانی و مخصوصاً ازدیاد چربی خون بالا و نوسانی ریزش موی سر رو بسیار زیاد میکنه عوامل دیگه هم داره ها دهان انسان بدبو میشه ادرار انسان بدبو میشه همیشه احساس تلخی تو فضای دهان میکنه مخصوصا بعد از خواب که بیدار میشه صبح و نندی حالا مو خود ریزش مو پیدا میشه پس گاهی ریزش مو هم به خاطر چیه اختلالات متابولیکیه که توضیح داته. یه بار دیگه پناه بر خدا نه ناشی از سرطان های دستگاه گوارش مخصوصا سرطان معده است بعد حالا مؤمنان در بحث شیمی درمانی تمام موها میریزه موی سر که بمونه موهای ابروش، موهای مجاش سیبیردیش های همه یخت همه اینا دوره شیمی درمانی تموم بشه سرطانش بهبود پیدا کنه تا بالا همه این موها برمی گرده. اگر شخص سرطانی استرس برش داره ها به ریزش موهاش در زمان کمتر و بیشتر میشه پس باید خودش رو ریگلاج آه. یعنی حالت ریلکس داشته باشه تصال فهم چیزی نشده اما دوره شیمی درمانی تمام میشه دوباره معاق برمیگرد لازمید دسته پا گم کنید نظیر کسی که سرطان ندارد ولی استرس شدید نگرانی مستمر دارد که میدید یه تیکه عبروش افتاد بیماری گری یا کچلی نداره ها یعنی بیماری گل و یا قرچ کچلی بیماری دیگست. دو تا بیمار اینا هیچ کنم نداره به خاطر استرس شدید ها یه تیکه مو افتاد، از زخم کچلی داره مؤمنان نه سر داره مؤمنان فقط استرس شدید یه تیکه سیبیل یه تیکه ریش یه تیکه ابرو. یه کم که خودش بی خیال بگیره خودش ریلکس کنه داروش همینه خودتو جمع جور کن تو بحران ها تو بحران نمون یعنی اگر شکستی در زندگی پیش آمد ناملایماتی پیش آمد از صفات گم نکن، خودخوری نکن، درگیری ذهنی نداشته باش. چون آشوب‌های ذهنی اختلالات روانی میآورد. اثر تخریبیش روی مو ظاهر میشه. یعنی یه بخشی از مو خود به خود میریزا یه مرتبا مثل اینکه کسی تیغ زده باشه. اینطوری میشه. حالا اینجا وقتی که بیخیالی کرد در عین حال که مسئولیت پذیره و مسئولیتشو به نحو احسن انجام میده اما خودخوری نکنه دلشوره نداشته باشه استرس نگرانی مستمر نداشته باشه آشفتگی ذهنی اختلالات روانی هم پیش نیاد پس تو بحرانها تو شکستها مدیریت کن و شکست خودت رو و مینیمم زندگیت رو تبدیل به فرصت تلائی کن. یعنی ازش یک فونداسیون بساز. یک زیرساخت سعی بساز برای عروج در آینده. یعنی شکستتون تبدیل به فرصت تلائی کن. یعنی میگیم مدیریت بلخشتن در این قسمت مباعث خودم. حالا ریزش مویی که ناشی از استرس شدید باشه اونم خوب میشه. دارو نمیخواد حالا این هرچی گفتیم تموم شد حالا دوباره بیانی سر جسم پس اگر ریزش مو بخوام جلوگیری کنم یا درمان کنم و شخص فقط چی داره مؤمنان کمبود املاح داره میگیم مغز بادام شیرین مغز پسته مغز بادوم هندی مغز بادوم زمینی مغز گردو میتونه املاح بدنت رو تأمین کنم مخلوط اینها با اصل میتونه تأمین کنه حچقا هم ریزش مو دارم ناشی از کمبود املاح هم بدنم خیلی نحیف و لاغره میخوام فربه بشم میگه مغز بادام شیرین درختی به اضافه مغز گردو مخلوط در اصل روزی یه قاشق پلو خوری بخور فربهی هم میاره درست چون چی شد؟ احسه اومگا هم داره ها، اومگا سهی که دارن برای کسی که چربی خون دارن مفیده برای خانومایی که یا احسه هستن اومگا بسیار مفیده در درمان افسردگیشون یا سرماخوردگی روانیشون مفید. چون این افسردگی عادی یا سرماخوردگی روانی در زنانی که سوء تغذیه دارن و حامله یا استحاذه هستن یا ایام حیز هستن یا دورانه یا استگیه هستن به فراوانی دیده میشه چرا؟ چون کم بوده خون ها خون بدن که کم بشه یکی از عوارزش چیه؟ افسادیه یکی دیگه از عوارزش چیه؟ نقنقوم میشه نکت سنجیای بیجا داره. یکی دیگه از عوارزش چیه؟ ریزش موی یه سرش زیاد میشه یه این فکولان موام چرا کم شد یه چرا مشمش میریزه خاطر کمخونی حال اگر کمخونی استرس دوتا دست به دست هم داد ریزشش بیشتر میشه کف سرش پیدا میشه میگه چرا فرق سرم پوست سرم پیدا میشه خیلی ناراحتش میکنه پس شما باید کمخونی و ضعف کم کمخونی و استرس اینا رو درمان کنید حالا مثالای کلی که بعضی دکترها تو کتاباشون آوردن اون را از خارج گفتم یادگاری از این هم مباعثتون بعضی دکترها مؤمنان به نام دکتر مرتزا صفائی دکتر مرتزا صفائی در کتاب گلچین جامع از کتاب گیاهان دارویی و عطاری ایران با مقدمه دکتر فریبرز برز معطر استاد دانشکده داروسازی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران خب صفحه 457 همجور مباحث میات مؤمنات تا صفحه 532 از صفحه 457 تا صفحه 532 رشدمو پرپشتیمو درمان خارشمو بیماری گال درمان کنی بحث گری جرب تو رو باید میگه جرب بحث بهق که لکه های سفید سطحی پوست بحث اصلا جوش های پوست ریز دراش بحث رشدمو بحث ریزش ما و مانند این اینا همه تی این قسمت مؤمنه است. هست نگاه کنید قشنگ حالا بعضی شروطتون یک کم میخونم مثلا اگر خانوم یا دختر دوست داره موهای پرپوش دو چیز یکی چیه با جوشانده یا دم کرده سبزی شمبلیله با این محلول شمبلیله را پخته و به قضای روزانه خودش اضافه کند تا موهای زیاد و پرپوش داشته باشند مخصوصا کسی که یا تو نگفتن بیماری هم متابولیکی یکیش هم فشاخون بود مخصوصا کسی که خون هم داره خونش هم بالا شونزه است اینجا با نهار شامش میتونه یه مش سبزی شمبلیله هم بخوره هم فشاخونش میاد دوازه هم مومن ها موانش پر میشه گرفتی این مومنات چی شد؟ اما اگر خون نداره همینقدر که یه قاشق مربو خوری یا یه موش با شامش خورد سبزی تازه یا یه قاشق مربو خوری پودر شنبلیل خوشکش خورد یا نصف استکان عرق شنبلیل بدون اوسانس مصرف کرد کافیه اگر کسی پودر سدر و پودر گل ختمی خبازی را مخلوط کند و بیس دقیقه قبل از حمام به سرش بزنه موهاش چی میشه مومنا؟ ریزشش بند میاد اگر مؤمنا کسی سر یا بدنش زخمی شده و جای زخم پیازمو سالمه اما موه ریخته بخوایی موهای جای زخم در بیاد زماده تخم کاهو زماده تخم کاهو در اون قسمتی که زخم شده و مواش ریخته بگذاری ها در میاد دکتر میر حسین حیدر در کتاب معارف گیاهی این مطلب رو عبرده جلد یک صفحه دویسته یک کسانی که دوست دارن موشون تقویت بشه و رفع کچلی بشه اینجا زماد نخود نخود پخته نخود این اینم دکتر دین جزائری در کتابش آورده. نخود خیس زماد نخود خیس و خورد و له شده در تقویت مو و رفع کچلی مفید است بخواییم تقویت مو و مندگاری مو کنیم روغن نارگیل به اضافه روغن زیتون به نسبت مساوی یک شب در میان به سرش بزن حد روز یک بار مستحب آدم استحمام کنه بدن فربه میشه از هزال در میاد نیست چاقی مفرد نیست چل بی بیان به بالا نیست نه هزاله با هز دو چشم ززم نه اسمینه چاقی مفرد نه چیه فربهی فربهی یعنی بدن در فرمه خب. خب هر دو روز آدم یه بار بر امام اشکال نداره فربهی میاد حالا یک روز در میونم شبا چکا کن با روغن نارگیل مومن مخلوطه با روغن زیتون خالصه نسبت مصابی اگر موم کندوی اصل مومش طبیعی باشد از پرافین و گلیسرین و وازلین و مانندین اینا نباشه. چون حالا موم ها اکثراً چیه؟ مصنوعیه نه به درد خوردن میکنه نه به درد یک کارایی که میگه موم طبیعی اگر موم طبیعی کندوی زنبور عسل رو در روغن حرارت بدم بقیه شو هم خوب نرم هم, هم تو روغن حل کنم صاف کننده و آثارش رو هر شب به سر بمانم تو بحث دکتر صانعی تو کتاب لاغری صفحه 179 بحث ما که چند روزه تو بحث حنا هست و خضاب حنا 15 گرم تخم شنبلیل 50 گرم تخم شاهی 50 گرم موم طبیعی زنبور اصل 5 گرم روغن زیتون یا روغن کنجد 250 گرم هم اوسه رنگ مو خوبه هم اوسه مندگاری پوست خوبه هم اوسه لطافت پوست خوبه چون خود روغن کنجد لطیف کننده پوسته برای صرفه های اگر کسی صرفه های خوشک زیاد داره همچنین ریزش موش هم زیاده یادتون اوسه درمان صرفه های خشک مزمن گفتیم شکر تیغال یا دمعصب یه گیاه، شکر تیغال یا دمعصب سه مسخف زوفا چهار مسخف اناب پنج مسخف اینا رو پود میکنی قطیه هم میکنی هر روز یه قاشق چای خوری میزه تو استکان توش آب جوش بریزه پنج دقیقه تا در دقیقه صبر کنه هم بزنه بخوره به صورت قرقره کنه قورت بده صرفهای خشک مزمنش خوب میشه خیلی این قبیه حالا مبسل خود بخواهم حاج با رشد موی سر مندگاری موی سر و جلوگیری از ریزش مو هم بشه حالا این نسخه بین میسیم گل زوفا 20 گرم سرب 50 گرم ترسی آبوشان 10 گرم روغن زیتون یا روغن کنجد 250 گرم همه را نم کوبیده در روغن حرارت داده صاف کنند یک شب در میان به سر بزنند با چیزای دیگه است مؤمنان مطالعه کنید مثل جوشانده برگ و ریشه گزنه و گاهی مخلوط با آویشن شیرازی خب گزنه یکم پوست خراش میده سبب التهاب پوست میشه خب اما تو بحث جلوگیری از ریزش موه داره موام نریزه حالا یک کمپوست هم شد ام اما اگر کسی اگزما داره نباید بزنه اصلا بیتاقت میشه خوابش نیمبره تو باید شد چی میگن؟ این باز بعضیه گفتن رو نمیخواهم اسمشون ببرم میوه بنه اگر میوه بنه سوزانده شود که بهش میگن مردم بنه چی؟ به محل به بمالند گال یا گری یا جرب باعث رویاندن مو می شود مخصوصا در مورد تاسیه سر اثر بیشتری دارد و چنانچه برگ درخت را کبیده درخت بنه برگ درخت بنه را کوبیده و در محل رویش ریزش مو بمالن باعث رویدن مو شده و حتی مو رو دراز نگه میداره یعنی طول عمر مو بالا میره زریب شکست مو کم میشه این هم آقای دکتر قیاسدین جزائیری تو کتابش آورده جلده یک صفحه 191. نبد سماد برگ شنبلیله برای تقویت مو نافه و چنانچه زن آبستن از برگ شنبلیله زیاد بخورد بچهش بچه جنین در رحمش دارای موهای زیاد میشه این بچه پشمالی به دنیا آورد یک نمگه بیده عدو خزی بخری <تصفح> <تصفح> بله به دیگه که اسانس شیمیایی نداشته باشه حالا مؤمن هایی چیزایی خوشمذری دیگه خب گندوم میخوری نوش جان برنج میخوریم نوش جان. اما سعی کن سبوس گندم و ج و شلتوک که برنج هم همراه باشه.ع این ویتامین های به یک به 6 به همراه باشه خیلی فواید داره تنبلی روده بزرگ نگیری به حرکات دودی شکل روده بزرگت کمک کنه موندگاری فضوولات تو رکتام نگیری حالا مقعسه خودوم. رشد موی سر میاره پس به حضات خانم و بچه‌ها. برنج شلتوکدار یا گندم و جوه سبوستار تو جیر قضایشون باشیم مثل حلیم مثل سوپ و مانندیم همچنین مؤمنان خورما با مغز بادام شیرین هفته هفته رشد موی سر زن بچه زیاد میشه پوست شلتوک و آب شلتوک میل کنید چیزایی دیگه هم بهش حاشیه زدیم گفتیم کسایی که در دامقانن یا اون طرف قاینن کسایی که اطرافشون درخت پسته هست جوشانده پوست پسته جلوگیری میکنه از ریزش مو پوست پسته هم میدونم سه اشخالی جوشانده پوست پسته که بیسته قبل همون بدن جلوگیری میکنه از ریزش مو اگر کسی مومنان این سبزی بنی امیه را یعنی شاهی ترتیزک تیزک که تو روایات شیعه میفهماید جرجیر عربا میگن رشاد اگر کسی این شاهی رو مومنا آبش رو به پوست سر مالش بده موهای سرش تقویت میشه ریزش مو هم جلوگیری میکنه اصلا این خارج سر نمیخوام دوشته باشم دونه چرکی هم نمیخوام داشته باشم حنا به اضافه صدر هم خارج سر عبه میره هم دونه چرکی ریزش عبه میره حاجه کل بدم هم خارجتر الحوک البادروج ریحان الجبلی که تو روایات اومده کرده یا جشنده ریحان کوهی رفع خارش از پوست بدن میکن هم یه مختصر میخوریم مامنا هم به صورت زماد و پوماد میمالیم بیست دیگه سب میکنیم و با آب میشه لازم ایس کنم آتش به بدنش بماله یه چیزای دیگه بدی بود ها. اونا نیواردم همراه از بول حیوانات از حیوانات حیواناتی حال آدم به ام حاجقا بله هم استخونام درد میکنه. هم احساب هم هم موام زیاد ریزش داره میگیم روزی یک استکان جوشانده قلیز سعتر با سین با یعنی آویشن شیرازی روزی یک استکان جوشانده قلیز او رو بخور هم استخون دردهای ناشی از سعتمزاجی و افت متابولیسم بازار هم ضعف اعصاب خفیف و متوسط و هم ریزش موی سرت خوب میشه بفرمایید بله کسی که دائما ترشا داره سال این بزرگوار کسی که دائما ترشا داره سرسوزه معده داره تخمه داره ریزش مو داره کم خونم هست فقر آهن افونت داخلی هم دارد هر شب دو تا سیب رسیده آب بگیره یه قاشق پلو خوری اصلا هم توش هم بزنه بخور کیف؟ دو تا سیب رسیده مثل دو تا سیب قرمز معطر لبنانی یا دو تا سیب گلاب خراسان یا دو تا سیب زرد رسیده یه لیوان آفسی به تازه طبی یه پاشه پلوخوری عسلای های مخصوصا عسل آبیشن و نعنو توش هم بزن بخو هم اونایی که گفتم یکیش هم سال آقا بود خوب میشه کسی که هم خارش سر داره هم ریزش مو میتونی چیکار کنی؟ گل ختمی به اضافه صدر به اضافه شاتره به اضافه گل ریواس به اضافه کل سرشوی تا این 4 پنج تا رو مخلوط کنی سرت رو با این بشوی هم خارش سر هم جلوگیری از ریزش مو حاجابا بله هم ریزش مو دارم هم پوست بدنم پوست پوسته میشه به سبب که پوسته های نقره ای به اصطلاح روایات داو الصدف به اسطلاع علم جدید در تخصصی پوستمو بیماری پسوریازیس به چهار مدل پسوریازیس خفیف پسوریازیس شدید پوستچولر و پسوریازیس معکوس. حالا قالبا همین اولی دومیه حالا کسی بخواد این دا صدفش رو خوب کنه باید در هوای شرجی باشه حالش بهتر یا اینکه هر روز یک دوش آب ولرم بگیره یا اینکه 20 دقیقه در وان حمام بدنش قرار بده جای پسوریازی رو جاهایی که پوست پوست پوسته میشه با پماده یا روغن کنجد ماساژ بده انواع لسیان های شیمیایی هم هست حالا این تبیه بدنش و سرش رو با کتیرا بشویه و با محلول گیاهی کل تار حالش خوب میشه حرف ما بچه حالا مؤمنات تو کتابتون جهت شستشوی مویسر از نسخه عطار صفحه 526 این مطلب رو آورده اشکال نداره حرف خوبیه پودر کتیرا را در یک لیوان آب گرم حل نموده و یک زرده تخم مرغ با آن مخلوط نموده در حمام به جای پاک کننده شیمیایی سر مصرف کنم. البته زیاد کف نمی کند اما پاک کننده سالمی هست برای حالت گرفتن مو بعد از استحمام ژل کتیرا که از حل کردن پودر در آب گرم، یعنی پودر کتی را در آب گرم به دست می آید به سر بمالید و بعد با آب شستشو دهید روغنای سر طبیع روغنایی که به سر بذارن و طبیعی باشه باز مطالب مختلفی آمده از روغن بادوم تلخ و روغن بادوم شیرین و، روغن کرچک و روغن زیتون و روغن کنجد و بعد زیاد اوم. حتی از این شیمیایی مثل سیترات دوفر سیترات دوفر مثل جوهر آهن چون یکی کسایی که سوال کرده بود آقا قهوه و کاکو. حالا خواستم میگم جوهر آهن که سیترات دوفره اگر با قهوه و حنا قاطی به چیان؟ بعد به سر بزنی برای تقریهت مو هم نافه حتی عطار یزدی گوید صفحه ایجده میگه جوهر آهن یا سیترات دوفر اگر من چقنده رو رنده کنم و با سیترات دوفر جوهر آهن مخلوط کنم و به سر ببندم و به عنوان یک روغن سر طبیعی مورد استفاده است بعضی از سمق آوردن سمق با مین غیم سمق که بیش از شسفتان نوع ما سمق درخ حالا یکیش مبایست خودمون سمق عربی سمق عربی خمیر نموده شب به سر ببندن صبح بشویند. موی سر شفاف نرم لطیف می شود ها چرا سمق عربی گیر نیمونم میگه این شلتوک برنج پوست برنج پوست برنج را نم بساین به سر ببندن برای مو و تقویت پیاز مو مفیده اون شلتوک برنج ما. برنج ما برس چی کردیم من دارم مانی جدیدی ها نمید تو روایات بحثن الاروزو یعنی برنج شلتوک دار حالا کسی که اوسه معده خوبه اوسه روده خوبه اوسه اسهال ها شکم جمع کنه بچه سرمی نشه مفیده بعد اونو به صورت کته ماست چکیده کم چرب بخوری یا کشک قلیز بخورین یا بخوای سریعتر خوب بشه مؤمنان این کته ماست چکیده آبیشن نعنا به دو عدد معده جمع به دو عدد که یه محتاجی به سرام نمیشه بچه مؤمنا چون گایی هم تب داره هم اسال به دو روز بچه تو میندازه سرامی میکنه نیمارستانه این سری مؤمنا به دو بار که بهش غذا بریم نیدهش جمع میکنه نمیذاره املاحش از دست بده استفراغش هم چکار میکنه به دو چیز قبل از غذاش سوسنبر بعد غذا ابسیب سوسنبر یعنی نعنا فلفلی یه گیاه سبزیه سوسنبر قبل قضا سوسن سنبه بعدش چی مومن ها؟ آبسی تهوه بچه تم خوب میشه بچه دیگه هم و تهوع داره چون بعضی بچه ها پرخوره با اینکه تب نداره حال هم نداره حالی پرخوره از شدت پرخوری اق میزنه حالا اینجا چیکار کار کن؟ بعد غذا نصف استقام بهش عرق نعنا بده بعد بگو بابا جون بیا با هم دیگه تا تی تا با خودت عمدن راش ببر یکم ده دقیقه بیست دقیقه که راش بردی بعد بشی یه استقان آب سیب بتو دیگه تهوه و اغزدن و استفراغ ناشی از پرخوری و سه بچه روخ نمیده یادتون باشی چی گفتم اگه خانومت تصاف فهم ماه دوم سوم حاملگی شه ویارش هم شدیده اسپاس معصبی در اگه سوه تغذیه مادر نگیره جنین در رحمه هم صورت تقصیح نگیره کمال لقی نگیره لکبینی بینی نگیره بند ناف بچه از جدا هم جدا نشه باید کاری کنی که ویار شدید خانومت خوب شه پس قبل هر قضا سوسنبر، بر بعد هر قضا چند قدم را بره یه آب آبسیب بخوره خانومه اگر نه بالاترین سخت جنین در ماه دوم سو محاملهیه اگر این رعایت نکنیم خب سویه تغذیه که شده و سخت جنین کنه هم کمخونیه شدید هم ضعف بانیه هم ریزش موی شدید هم استخون درد شدید میگیره هم کم کمحاصلگی هم قرار کردن زیاد هم اختلال در خواب و خوابه بسیار سبک داشتن دیدیم اومنا یکیش بحث ماست که بحث ریزش موشه چیزایی دیگه هم مهمه است حاجی مثلا میخوام هم پیاز موم تقویت بشه هم جلوگیری از ریزش مو بشه هم حاجقا آ معده و رودم استرسیه من نمیخوام که کارنت برم که بیان یه تیکه از روده کوچیکه منو در بیان به جاش یه تیکه روده مصنوعی آمریکایی بگذارم که حالا تو پزشکی جدید این کار میکنن قوی ترین داروی زده معده استرسی و روده استرسی پوست میوه بلوته پوست میوه بلوته حال اگر کسی هم ریزش مو زیاد دارد هم پیاز موش ضعیف است ولی دائما سرسوزه معده هم دارد هارتپور رنگ مدفوع و قاعتش هم قهوهی پررنگ یا سیاه قیری رنگ شده یعنی زخم معده و عشر هم دارد معده و روده استرسی هم دارد ای ستاره که داره؟ ای هم داره هم ریزش موی زیاد داره هم پیاز موش هم ضعیفه. حاج آقا میشه این 5 تا رو با یک چیز و دو سه چیز درمان کرد. بله بله بله. خوشمزه. بعد از غذا قدم میزنه. یه استکان آب سیب می‌خوره. دقیقه که گذشت مملائی شیرین بیان یک قاشق چایخوری. یا قرص گیاهی شیرینوش یک عدد. 20 دقیقه که دیگه گذشت قدم زد یک قاشق چایخوری پودر پوست میوه بلوط. حالا مال این دوتا این دوتا که تو دو کتاب آن مقداری که برای تقویت پیازمو و پیشگیری و درمان ریزشمو مقداری میوه بلوط و برگ بلوت را میجوشانند و آب صاف شده آن را با روغن کنجد یا روغن زیتون مخلوط کرده دوباره میجوشانیم. بار دوم دوباره میجوشانیم تا آب آنها بخار شود. مالیدن این روغن به دست آمده که میگیم روغن بلود به سر جهت درمان ریزش مو مفید است و از سفید شدن مو جلوگیری می کند پیشگیری از سفید شدن موی سر به صورت زمادی ها یه بار از درون می خوری که موی سرت سفید نشه از باب پیشگیری و یا اگر سفید هست سنت باید زیر پنجاه سال باشه روزی دو تا سه عدد حلیله سیاه سننای زیر 50 سال موهای سفید میشه. یه بار از درونه که حلیله سیاه روزی دوتا تا تا میخوری یه بار از بیرونه به عنوان رنگ طبیعی ها به صورت زمار همینی که آنها ستون خوندم مقداری میوه و برگ بلوت را میجوشانن و آب صاف شده آن را با روغن کنجد یا زیتون مخلوط کرده دوباره میجوشنن تا آب آنها بخار شود مالیدن این روغن به سر جهت ریزش مو مفید بوده و از سفید شدن مو نیز جلوگیری می کند و جهت برطرف کردن لک پوست و روشن شدن آن مفیده این هم تحقیقات آقای حاتمی در کتاب صفحه سر چلسه رفع ریزش مو درمان تاسی با سیاه دونه خب بهترینش روغن سیاه دونه. که قبلا نگفتم یه مش هست میریزی تو روغن زیتون خالص مثلا لبنانی بیست دقیقه میجوشه بعد همیشه بیست دقیقه قبل حمام به سرد میزنیم حالا مدل‌های های مختلف گفته که بعضیش به دست ما هم میخوره مثلا روغن سیاهدانه و حنا و مرد و صدر و گزنه و فندق و بادام مخلوط باهم جهت ریزش مو که درمان بشه و تقویت پیاز موی سر نافعه ف باز مؤمنات چیزای دیگه هم مؤمنه هست بحث حبته سودا بحث صبیق نخود بحث ارد نخود و چیزای دیگه حالا اینا دیگه مطالعه کنیم مؤمنام اگر ریزش منطقه‌ای مو باشه یعنی مولیسیک مولیسیک یا ریزش منطقه مو گفتم به خاطر استرس شدید اینا پیش میاد با اینکه گری نداره با اینکه کچلی نداره یعنی بیماری جرب جرب تو روايات ما ایرانی ها میگن گری تو اصطلاح پزشکی تخصصي پوستمو میگن بیماری گال با اینکه گال چه کچلی نداره با اینکه بیماری گال یا جرب نداره اما ریزش منطقه مو دارد با اینکه تاسی جلوسر ندارد یعنی آلوپسی مردانه اما ریزش منطقه مو به ریزش منطقه مو میگن چی؟ ملی سک ملی سک در جا با فت هم نخواد در جا میگن پلاد حالا این ریزش قطعه موها چی کار کنین؟ دکتر سانعی تو کتاب لاغریش صفحه 180 اشتاد میگه تخم شاهی 25 گرم کف دریا 5 گرم سیاه دونه 20 گرم تخم تروبچه 25 گرم پیاز آنسل که ایرانی‌ها میگن پیازموش. پیاز موش پیاز آنسلی با عین صاد ایرانی‌ها میگن پیازموش. پیاز موش پیاز آنسل 5 گرم تخمش هم ولله 20 گرم همه اینا رو بکوبن یک استکان در یک لیوان سرکه انگور ریخته روزی سه مرتبه موضع ریزش منطقه رو بمالن حتی ابو علی سینا در کتاب قانونش جلد دو صفحه 55 و او ترجمه های قبلی حالا شده هست جلدی او ترجمه های قبلی که دو جلدی بود جلد دو صفحه پنج و ابو علی سینا میگوید افسنتین داوثعلب اینها مخوره و گری رو اببین میبره یعنی هم روزه بیماری گال یا جرب مفیده هموسی مو که از اول موی سرش مو نگیره جایی دیگه از قانون ابو علی سینا جلد دو صفحه دویست و شهست میگوید همون ریزش مو منطقی به عربی میگیم چی؟ داوت با سه سناخته به خارجی ها میگیم چی موامنا پلاد یا مولیسک. میگه در درمان داالفعلب جای موها کریخته با پارچه پشمی ماساژ دهن و زماد خاکستر سیریش یعنی گیار سیریش و زماد خاکستر سیریش بر آن گذارن موی دوباره رویش پیدا نکن. کسایی که میخوان موشون سفید نشه مؤمنان سوپ پوست شلتوک و آب شلتوک برنج میل کنید در رفع مو خوره و جلوگیری از سفید شدن مو مؤثر است روزانه هشت مسقال پوست یا گرد شلتوک را با لیمو عمانی عمانی ها. دم کرده میل نمایی در جلوگیری از سفید شدن پوست سفید شدن موی سر مفید. اولی از اجدری بود صفحه 442 دومی از دکتر سانی صفحه سه مالیدن آبلیمو به سر آبلیمو تازه ها. مالیدن آبلیمو به سر موها را تقویت مخصوصا کسایی که موشون چربه موها را تقویت و از تاس شدن موی سر جلو گیریم. گفتم این مخصوصا حاشی مخصوصاً مخصوصا کسایی که موی سرشون چربه و قدرد چربی پوستشون خیلی فعاله شستن سر با آب شنبلیله زد خارج بوده همچنین بخواید بدون اینکه بابلیس بذاری قابل از برای حضرت خانوما. موشون رو مجعد کنم مثلا موش لخته میگه چرا موم مجعد نیست باز این زن دیگه موش مجعده میگه چرا موم لخت نیست دنیا اینجوری هم مکانیکا یه مکانیکی رفتم جای مسلم و منا بعد این فامیلمون میگفت با این ماشین هم تعمیر تعمیه بدم این میکانیکه میخنده گفتم چرا میخندی آقای مکانیک. گفت به خاطر اینکه حاج غانه یک ساعت نشده یکی ماشین آورد گفت ماشینم هم شستی بالا هم بشه بیاد بالا. بید بالا چیزی نگذاش یکی دیگه اومد گایی تخت فنری های بکوب تا ماشینم هم شستی کتا بشه <تصفح> دیدی بعضی پول فیگور میگیرن ماشین شستی بالا هم با اینکه تو شرکه که و کمر نیست باز دواره بعضی جمعون فیگور میگرن مومنان میره پول میده مثلا این تخت فنری ماشین بخوابه یعنی مهندسای کارخانجات نمیفهمن اینو میگره میکوبه میخواه با کوچکترین ترین موامنن چاله کف ماشین میخواه بزنیم حالا این مباعثه خودم مباعثه خودم گم نکنیم مجعد شده مو. مثلا موش لخته میگه میخواه موش مو مجعد بشه بدون اینکه که حاجه سشوار و بابلیس و اینا و دو ساعت برم زیر این آرایشگاهی که موامت اینا کن حالا بدون اینکه که پول خرش کنیم مواش مجعد بشه میشین یا نه؟ بله بله دک شستن سر با آب شنبلیله زد خارش بوده و باعث مجعد شدن مو و سیاه شدن مو می شود شما برای جلوگیری از سیاه شدن مو اول موتو با صابون بشو بعد با روغن سیاه دونه موتو ماساژ بده 20 دقیقه بعد برو حمام. جهت جلوگیری از سفید شدن مو ابتداعا سر رو با صابون گیاهی بشو بعد با روغن سیاه دونه چنین و چنان جهت حفظ و نگهداری و بهداشت مو به خصوصا موهای طویل سر رو هر روز با آب جوشانده برگ کدو دست دبا یقتین قرع شش قسم کدو داریم سه قسمش در روایات شیعه امده الدباو با الف مندوده القرعو قافر عین بحث دبا، بحث قرم و بحث یقتین حالا مبارسه خودم اینجا جوشانده برگ کدو و برگ کنجد جهت حفظ و نگهداری و بهتاشته. مو. به خصوص موهایی که طولانیه مثل مو حضرت خانم دخترت، عروست مانند این؟ یا بعضی هستن تو آخر زمان می میبافه از یه عدتفار بعضی, بعضی بازی, بازی کنان در میارن. کسی اگر موجاش ریخته بخواد در دربیاد برای ریزش مژه از روغن سیاهدانه استفاده شود. خودتون روغن سیاه درست کنید اگر استعمال خارجی میخوای میتونید بر پای روغن بادام تلخ یا میتونید بر پایه روغن زیتون باشه. همچنین برای تقویت ابروت اگر بر پای روغن بادام تلخ هر شب مخلوطی از پودر نخود خام و زرده مرغ به عبروها به شوره سر، چربی سر، خارش، مو خوره، کم مویی، چی کار را چرخ کرده اگر ترس آب آن را و اگر خشکس با آب خیسانده شود شب به سر زماد نمایید. این عمل را هفته چند بار انجام دهیم. جهت مو جوشانده ریشه شیرین بیان، دوم، داروی دیگه کتیرا و زرده تخمات سوم لعاب اسفرزه چهارم سوپ پوست شلتوک دیگه ندارم جو تントン برق بزنم خسییتون در حاجی آقا میخوام رنگ مو کنم باز طبق مباحثه خودمون از هایی که در نسج مو نفوذ میکنند حنا و مشتقات آنیلین حنا و مشتقات آنیلین قابل ذکر است حنا و رنگ طبیعی که به طور سنتی و اسلامی استفاده می شود اسلامی من نوشتم به عنوان رنگ موی حنایی و مشکی مورد استفاده بوده و هست و, و از تمام انواع رنگهای دیگر چه شیمیایی چه گیاهی بهتر و کاملا بیزررتره در کتاب تخفه حکیم مومن داره اگر کسی دوست داره مثلا زیر بغلاش یا پایین تنه قسمت آنه یا دور بره اون آلبالو گیلاسش یا اون بنده خدای دیگه بخواد موهای زائد در نیاد اینجا تخم مورچه له کنه دیگه تا آخر عمرش مو در نمیاد تخم مورچه این بنده خدا صاحب کتاب دیگه نمیخوام اسمش رو ببرم که دو تا دکتر محترم بودن یکی استاد دانشگاه اصفهان یکی دیگه مال جای دیگه اسم رو نمیخوام ببرم اینجا بنده خدا همجور گفته بنده یک طبقه یک روایت قدیمی تخم مرچه را بر موضع کودک بمالن مونه میروید و تو پرانده روایت قدیمی ولی یادتون باشه جای روایت قدیمیش بین این مطلب مهم فرمایش محمد مؤمن حسینی در کتاب تحفه حکیم مؤمنه حرفش هم درسته عکس این چیه؟ سیره آه. مثلا پیاز مود ضعیف شده جاش یه بار ببر بیار پیاز مود تقویت میشه مو در میاد یعنی پرزا کرکای صورت درمه بعد شعر میشه موی سیاه میشه حالا نه جایی که نباید مود داشته باشه اینجا چی مهمه ها؟ اینی که گفته بسیار مهمه اینی که تو بازار هست اینا تقلبیه وازلین و پرافین و گلیسیرین داره توش وزه اثر بخشی خیلی کمی داره و مردم براشون شما علامت سآله این هم مؤمنان مانین این دیگه بسی دیگه خدا همه شما رو با عافیت و